رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا با سلام. قسمت 21 برنامه برابری رو در خدمت شما هستیم در اواخر قسمت بیستم جناب آقای ایران مهر گرامی رسیدیم به بحث تنازو بقا بله. و مسائلی که اون موقع در رابطه با نظریه های داروین مطرح شد که مبناش این بوده که هنوز اون موقع چون ردیف های ژنتیکی بله. و همچنین دی این ای هنوز کشف نشده بود لذا هنوز به اون مسئله به طور کامل واقف نبودن به خاطر همین برخی از در واقع تناقضاتی که در این نظریات وجود داره دلیلش از همین نبود نظریاتی که هنوز به وجود نیامده بود. ادامه فرض شد شما رو در واقع میشنویم بعد بریم سراغ بحث اصلی. زنده باش. درود بر شنوندگان گرامی ما در پایان نشست پیش به بحث تنازع بقا رسیدیم. به بحث تنازع بقا رسیدیم. اینجا یه مثال بزنیم برای اینکه متوجه بشیم که میخواد وارد پس انتخاب طبیعی بشیم در آفریقا هر چند سال خشکسالی بسیار وسیع در منطقه ساوانا و مناطق دیگه سرخ میده بیشتر مناطق شرقی آفریقا که همین چیزایی که راز بقایی که مستند تو میده مربوط به همین جا اون و گوزن‌های و, و شیرا و خشکسالی بسیار شدید رخ میده بارون از اون موقع خودش دیرتر میاد گونه‌ها شروع میکنن به تلف شدن مردن حدی میرسه که حتی بعضی گناه به آستانه انقراض میرسن اما بالاخره خب اون بارندگی رخ میده و اون طبیعت دوباره زنده میشه حالا دانشمندان اینجا معتقدن زیستشناسا که چه اتفاقی میفته طبیعت حد اکثر فشار رو وارد میکنه نه که مثلا یکی یک جا نشسته باشه این فکر رو بکنه تو طبیعت نه اینو رخ داده اینا اتفاقه دیگه پس این چی چیکار میکنه این خوشحالی اون افراد ضعیفتر در هر گونه رو که نمیتونن این شرایط تحمل کنن رو میکشه از بین میرن اونهایی اونایی که میمونن سخت جونترین افراد اون گونه که یک ژن‌های احتمالاً حامل جنهایی هستن که میتونن این بااومت کنن اینها کی میشن اینا والدای نسل بعد میشن یعنی این ژن‌های برتر مقاوم و مقاوم رو به نسل بد منتقل میکنن بنابراین یک نسلی رو تولید میکنن که اینا حامل اون جنهای برترن که بر از نتونسته به سمتی بره که خوشتالی تعمل بشه، گرسنگی تعمل بشه، شرایط سخت رو تعمل کنن، تو نسل قبلی بیشترشون طرف شدن. بنابراین بیشتر جنهایی که منتقل به نسل بد میشه، جنهای مقاومن. این تنازو بقا باعث انتخاب طبیعی میشه. یعنی طبیعت به صورت خودکار دست به انتخاب میزنه. اون تنازع باعث انتخاب میشه. من مبحث آخری که از اون چیزی که پیروان این نظریه تو تقریبا یکی دو سده دنبال کردن و تو بحث انتخاب طبیعی وارد میشم و کوتاه به پایان میرسونم دیگه بعد وارد بعد ما حالا گفتیم نقد داریم به آیداروین دیگه. روست... حالا میخوایم بگیم به کجاش نقد داریم به کدوم مبحثش نقد داریم اونو من دیگه اینجا خاتمه میدم شما خواهش میکنم بحث رو بعد از این بحث, بحث انتخاب طبیعی دنبال کنین بعد باز فرصتی شد من برمیگردم که چه نقدی داریم و درباره آقای نصفی صحبت اینها دیگه خیلی کوتاه بگیم که ایران نجات و همکاران در سال دوهزار به نتایج مشابهی از پژوهششون دست یافتن اینا گفتن آقا محیط کمکم کم جانداران دارای صفات نامساعد را از میان میبرند سرانجام گروهی جاندار یک صفت یا تعدادی صفات جدید و مساعد را به درجهای خواهند رساند که به بهصورت گونهی جدید از گونه اجدادی ظاهر خواهد شد یعنی به نوعی تقریبا توضیح دادن که این توالی تنازع بقا و انتخاب طبیعی کم کم گونه ها رو در یک جنس هدایت می کنه و جلو می بره در دنبال باز همین دست دانشمندان ب... گفتن که برای به دست آوردن منابع در طبیعت رقابت وجود داره این طبیعیه دیگه تفاوت‌هایی که بهتر از همه با محیط خود سازگاری یافتن افرادی را که کمتر سازگاری یافتهن از میدان به در می اینو قبلا گفته بودیم دیگه این انتخاب طبیعیه باز هم اینجا در دنبال میگیم داروین هیچ اطلاعی از منبع این تغییرات نداشت اینجا توالی جنتیکی رو نمیش난 میدونستن تغییرات رخ میده نمیدونستن چرا اون کریک و واتسون بودن که اون زنجیره رو نردبان رو پیدا کردن بعد گفتن این شکست هایی در این زنجیره رو رخ میده دوباره اسید میشن که اون میشه جهش حالا آره این جهش ممکنه مثبت باشه ممکنه منفی اطلاع نداشت اما تغییرهای ناگهانی موروسی در یک جن که جهش و به اونو جهش مینامیم و خب ما امروز ازش خبر داریم به طور کلی این نظریه میگه که تکامل عبارت است از انشقاق همراه انشقاق همراه با تغییر در توالی جنها یعنی جهش آه. که در اثر انتخاب طبیعی پیش میآید و این محیط محیط زیسته که انتخاب طبیعی رو انجام میده پس دو تا از این همه حرف که زدیم دو چیز فهمیدیم جهش به صورت تصادفی روی توالی جنها رخ میده روی کروموزوم رخ میده اون تغییرات مثبت و منفی محیط دست به انتخاب میزنه که کدوم تغییر با اون محیط سازگارتره اون محیط که توش قرار گرفته یعنی میشه جهش و انتخاب طبیعی به کل این دوتا میگن تنازع بقا حالا اینا که تا اینجا همش با عقل جور در میامد حالا اینی که ما چه نقدی به آقای داروین و داروینیست ها داریم که بیشتر نقدی ما آقای دکتر عرضم به که به داروینیست است بله. تا به شخص شخص داروین دار. یه نقدی هم به ایشون داریم که اونم میگیم بیشتر نقدمون به داروینیست هاست من اگه اجازه بدین این بحثو برای که مقدار از حالت یه نواختی بیرون بیاد همینجا نگاهش می‌داره لطفاً خواهش از ش... خیلی متشکر شما استفاده می‌کنیم تا دوباره میکنید. ما تقریبا خب تقریباً قبل از برنامه هم یه توافق رسیم که تا تا 24م بحث داروین رو تموم بکنیم ان تو این نشست و نشسته الان 21 بله 22 و 23 و 24م بحث داروین رو می‌بندیم به امید خدا حالا بل. بحث هم شما نگهداری ولی میخوایم حالا یواشاش وارد این انسانی که ما خودمون ها ما آه. که ما از نسل اونها هستیم وارد بشیم که بخوایم این ترکیب جمعیتی گروه های جمعیتی گروه های زبانی چگونی شکلی رفتن چه تاریخی دارن ما چه تاریخ رو میتونیم مبدع بنامیم، چه تاریخ رو میتونیم چه کسانی ساکنان کدام سرزمین‌ها برای اولین بار در واقع اومدن تمدن ساختن بله و بله این خیلی, بله بله خیلی مهمه بسیاری که بدونیم که بله. بله. از کجا شروع شده و چرا ما مدعی هستیم که منشای انسان ها برابر هستش و انسان ها در طول این تاریخی که هستی و در واقع حیات بر روی این هستی و حالا مشخصا تو کره زمین هستش هنوز فرصت اون رو پیدا نکرده که تبدیل به یک نژاد خاصی بشه چه برسه به اینکه در واقع تبدیل بشه به یک افتخار بوچ تو خالی که در واقع هیچ افتخاری هم در واقع ندار شما لزن... معترض به این برابری هستی بله، بله این... ما چرا به این دوستانمون نمیتونیم متوجهش میکنیم چجوری بله بله. <تصفح> متوجه میکنیم <تصفح> میکنی. تقریبا دیگه پژوهش های علمای علم جنتیک به این مرحله رسیده که همه ما انسان هایی که به این شکل با این حالت و با این در واقع پلتفرم چه اسکلت، چه پلتفرم مغز و پلتفرم دستگاه که ما رو متمایز میکنه از سایر موجودات یک جد مشترکی وجود داره که حدود چه صد و چهل هزار سال پیش تا صد و سی هزار سال پیش در آفریقا، در شرق آفریقا در واقع میزیسته آیا دکتر اوز به هم یک پرسش دارم چون تو مواحث تاریخی این مهمه و خواهش میکنم دیگه از این به بعد دیگه هیچ کدوممون چیز پرسش در واقع چیز نذاریم چون تا حالا که اومدیم یعنی پرسش جب... نکنیم نه, نه یعنی در واقع پرسش بکنیم یعنی منظورم اینه که دیگه پرسش رو پاسخ باشه بله پرسش و پاسخ, بله، پاسخ باشه که هیچ نکته ای رو خ... خب، ازش نگذاریم آه. به هیچ برس. شاید این مرتبط به بحث نباشه اما تو بحثه تاریخی دوستان تاریخ شناس ما دوستان باستان شناس ما دوستان انسان شناس ما یه ای ایرادی میگیرن من متوجه شدم بازم میگم این بحثتون رو شما ادامه بدین فقط یه نکته بود من خواستم از دست در نره این خیلی آموزند است من دیدم شما کاملا رعایتش کردین یعنی مشخصه که شما واقف هستین طبیعی هست به این موضوع اینی که شما وقت که تک تاریخ گذشته رو آمدین بگین گفتین از 140 هزار سال پیش تا 130 هزار سال پیش یعنی ما وقتی که می‌خوایم آینده رو بگیم میگیم مثلا 300 تا 400 سال آینده اما وقتی میخوایم گذشته رو بگیم مثلا میگیم تاریخ فلات ایران از هزاره چهارم تا هزاره سومه از میلاد خب؟ یعنی وقتی که گذشته رو داریم میگیم اول عدد درشتر رو باید بگیم قبلتر رو باید بگیم یعنی نمیتونیم بگیم انسانهایی که مثلا روند تکامل انسانها پدید آمدن این گونه از 130.000 تا 140.000 سال پیش این از نظر علمی درست نیست غلطه این برای که دوستان شنوندگان جوانان از این مطلبی که شما فرمودین اینو آویزی گوششون بشه من فقط خواستم یه تأکیدی روش بشه که شما چرا اینجوری گفتین گفتین صد و چل هزار تا صد سی هزار مت... سال بیش. اطفال... درستش همینه که جناب علی فرمودن البته متأسفانه یک غلط مصطلح هست که خیلی ها اینو در واقع متوجه هم نمیشن یا متاجه میشن و در واقع تجاهل عارفانه میکنن و ازش میگذرن اوز میخوام من نه خواهش میکنم از شما. میکنم که یه جد مشترک، پدر مشترک و احتمالا یک مادر مشترک بین 130 هزار تا 120 هزار سال پیش دارن. که چنین چیزی تقریبا از با آزمایشات ژنتیکی یه چیزی اثبات شده است و تقریبا قبلا ها فرضیه بوده یه چیزی حدود سی سال این یه فرضیه بوده ولی با آزمایشات ژنتیکی در که در این سی سال اخیر صورت گرفته این هستش که کاملا به اثبات رسیده. گفته میشه که این انسان انسان خردمند در واقع ما با تصاحل اسمش رو میذاریم از صد،, صد هزار سال به این ور از حدود 100 هزار سال گذشته که تقریبا حالا نمیشه گفت با تصاحل هندسی ولی تقریبا به یک کپه جمعیتی در واقع میرسن بله. و به یک کلونی،, کلونی جمعیتی میرسن یه مهاجرت اولی مهاجرت خودشون رو شروع میکنن این نوع مهاجرت این در واقع نوع انسان که از آفریقا شروع بیکنن و به تمام نقاط دنیا شروع میکنند به مهاجرت کردن حالا ما یه گریزی میزنیم برخلاف سایر گونه های جانداران مثل پرنده ها که محصو... یا بقیه موجودات یا حشرات یا بقیه موجودات دیگه که با محسوشن توی منطقه جغرافیایی یه گونه جدید رو به وجود میارن که ما اسپسکیشن در واقع میگیم مثل پرندگان ولی گونه ای انسان با وجود پراکندگی جغرافیایی همیشه یک گونه محسوب میشه این گونه ای انسان بله. در واقع خردمن البته شاید از لحاظ شناخت طبیعی هم باشه چون صد هزار سال اصلا فرصت بسیار کمی بسیار بسیار کمی برای به وجود اومدن یک گونه و یک نژادی که در واقع جدا شدن یک نژاد بله. خاص از یک گونه هستش اینکه که گونه ساپینس بله دقیقا حتی در سرده خود انسان هم دو میلیون ساله تقریبا بله حتی انسان شنا ها معتقدن که دو میلیون سال هم کفایت نمیکنه برای پدید آمدن نجات در بینیان این گونه, گونه بر. بر. بسیار فرصت کمی هستش فقط تنها اتفاقی که افتاده بر تعداد اونها در زیاد افزوده شده بر. یه حالتی هستش که جمعیت این نوع اع خصوصا در تو این هم حتی چیز غیر طبیعی هم نیستش بعد از انقلابی کشاورزی هستش که این جمعیت یهو یه اضافه میشه و زیاد میشه و خصوصا در این سه هزاره اخیر اصلا این انسان حجم مغزش هم زیاد بودای دکتر از اولم هم که این گونه پدید اومد به خاطر حجم مغز بالا میتونست از خودش حفاظت کنه نگهداری کنه و این خیلی کمک کرد به رشد جمعیتش تا پیش از انقلاب کشاورزی حالا بعد اون که اصلا بعد اون که دیگه بیشتر بر... شد در واقع رشد جمعیتش بیشتر شد خود وا علاو خوده 500 سال اخیر که دیگه ده برابر شده ده برابر که بسیار بوده در صنعتی بودی که بسیار اضافه شده دانشمندا روی بخش های غیر نسخه برداری شده یه چند ریختی ژن پلیمر پلیمر دی این ای تمرکز کردن توی حدود 10 سال اخیر قسمت های چند ریختی ژن برای هیچ پروتئین رونویسی نمی کنه. و بدنه هیچ صفت ظاهری رو در واقع به وجود نمیاره. حالا این عرض کردم. حالا فعلا اینو داشته باشین. ولی جا دادن، تغییر و جابجایی ها تکه چند ریختی میتونه شاخصه پیشینه تاریخی خاصی از جمله یک بیماری یا یک رفتار و یا یک در واقع خصیصه خاص حتی جنسی و اجتماعی رو برای انسان به وجود میاره یه عنصری هست که بر اساس این عنصر این رو در واقع اومدن آزمایش آزمایشات خودش رو شروع کردن به اصلاح انصار آلو یا آلو المنت چون انصار آلو المنت و نوع آزمایشی که روی نوع انسان صورت گرفته مباحثش طول میکشه و از اتاق فرمانم میفرمایند که وقت قسمت 21 که ما رو پایان به. هست اینجا قسمت 22 که ما به پایان می مبحث رو شنوندگان عزیز داشته باشن تا آغاز قسمت بیست و دوم که این بزرگواران رو به خداوند بزرگ و بتوانیستان خدا یعنیتر شد